در اینجا چهار زندان است. در اینجا چهار زندان است. به هر زندان دو چندان نغ، در هر نغ چندین حجره، در هر حجره چندین مرد در زنجیر. از این زنجیریان یک تن زنش را در تبه تاریک بهتانی به ضرب دشنهای کشته است از این مردان یکی در ظهر تابستان سوزان نان پرزندان خود را بر سر برزن به خون نانفروش سخت دندانگرد آغشته است از اینان چند کس در خلوت یک روز باران ریز بر راه رباخاری نشستند کسانی در سکوت کوچه از دیوار کوتاهی به روی بام جستهاند کسانی نیم شب در گورهای تازه دندان طلای مردگان را می شکستند منم ما هیچ کس را در شبی تاریک و طوفانی نکشتم منم ما راه بر مرد رباخاری نبستم من اما های شب زبامی بر سر بامی نجستم در اینجا جا چار زندان است به هر زندان دو چندان نغب و در هر نقب چندین حجره در هر حجره چندین مرد در زنجیر در این زنجیریان هستند مردانی که مردار زنان را دوست می‌دارند. در این زنجیریان هستند مردانی که در رویایشان هر شب زنی در بحشت مرگز جگر برمی فریاد من اما در زنان چیزی نمیابم گران همزاد را روزی نیابم ناگهان خاموش من اما در دل کهسار رویاهای رؤیاهای خود جز انعکاس سرد آهنگ صبور این علفهای بیابانی که می و می و می پوسند و می ریزند با چیزی ندارم گوش مراگر خود نبودیم بند شاید بامدادی همچو یادی دور و لغزان می از تراز خاک سرد پست جور مینه جور مینه